فصل بیستم درباره آن دوره چندان چیزی برای گفتن ندارم برای نخستین بار سفری به گوشه و کنار اروپا کردم بیست و یک سال داشتم و دارایی خانواده در اختیارم بود برادرم به اندک پولی می ساخت و مادرمان که رفته رفته پیر شده بود نیازی به آن نداشت قزیمو سندی امضا کرد و بهرهوری از همه داراییمان را به من واگذاشت. در عوض بنا شد که من ماهانه چیزی به او بدهم مالیاتها را بپردازم و سررا سامان دادم به کاربار خانواده با من باشد. باید سرپرست خانواده می شدم و زنی می‌گرفتم. زندگی آسوده و به سامانی پیش رو داشتم. و در واقع بی اعتناب افتخیز آن دوران را به چنین این زندگی نیز دست یافتم. آن شدم که پیش از آغاز کردن این زندگی گشت و گذاری بکنم. به پاریس نیز رفتم. و این در هنگام اوج شهرت ولدهر بود که پس از سالها کنار گیری یکی از نمایش را به صحنه می آورد. ولی آنچه می بنویسم در زندگی خودم نیست. زیرا خاطرات من به نوشتن نمیارزد. تنها نوشتن این نکته است که در آن سفر با شگفتی دیدم که شهرت مرد درخت نشین امبروزا تا دور دست های اروپا کشیده شده است. در کتاب سال نامی چشمان به تصویری افتاد که زیرش نوشته شده بود، انسان وحشی امبروزا، واقع در جمهوری جنابا، هرگز از درختان پایین نمیآید. تصویر نشان نشاندهنده مردی سراپا پشمالو بود که ریشی بلند و دومی دراز داشت و ملخی را میخورد در آن کتاب این تصویر در فصل حیولاها آمده بود و پیش و پس از آن عطلب هایی درباره انسانهای دو جنسی و دختر دریایی با نیمتنه ماهی دیده میشد. در هر کجا که این گونه برداشت های خیال بافان از کازی مدرمیان بود از گفتن اینکه او برادر من است خودداری میکردم. اما در میهمانی که به افتخار ولتر داده شده بود با سربلندی درباره او سخن گفتم. فیلسوف پیر روی مبلی نشسته بود، گروه بزرگی از خانم ها او را در میان گرفته بودند و از او ستایش می و او هم خروسوار به خود می‌بالید و هم زنبوروار به این آن میزد. با شنیدن اینکه از اون پرسید. شوالیه یعنی عزیز، این فیلسوف معروفی که مثل میمون بالای درختها زندگی می کنند. مال شهر شماست؟ نتوانستم جلو خودم را بگیرم. و سرفرازانه گفتم بله بارون روندو برادر من است ولتر بسیار شگفت زده شد بدون شک برایش عجیب بود که برادر آنچنان کسی آدمی بسیار معمولی چون من باشد درباره و بسیار چیز ها از من پرسید از جمله اینکه برادر شما همیشه بالای درخت ها میماند برای این است که به آسمان نزدیکتر تر باشد در پاسخش گفتم، برادرم معتقد از که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت. از این گفتم بسیار خوشش آمد. گفت، پیش از این فقط طبیعت بود که پدیده های زنده را به وجود می آورد. اما الان عقل این کار را می کند. این را گفت و دوباره به حمله به خراف پنداری آلمان پرداخت. پیامی فوری از امبروزا رسید و وادارم کرد سفرم را نیمه کار بگذارم و به خانه برگردم. بیماری آسم مادرم بالا گرفته و او را بستری کرده بود. هنگامی که در بزرگ باغ را باز می‌کردم، نگاهی به درختان خانه انداختم و مطمئن بودم که کازیمو باید همانجاها باشد. او را دیدم که روی شاخه بلند درخت توت نزدیک پنجره اتاق مادرمان نشسته است. کازیمو فریادم را فرو خوردم. برادرم با اشاره دستی به من فهماند که حال مادر کمی بهتر شده است. اما بیماریش همچنان سخت است و نباید سرا صدا کرد. اتاق نیمه روشن بود. ژنرال در بستر خود به چند بالش تکیه داشت و هرگز او را تا آن اندازه بلند بالا ندیده بودم. تنها چند تنی از زنان خانه کنارش بودند. باتیستا هنوز نیامده بود. شوهرش باید همراهش می آمد و منتظر بودند که انگور چینی به پایان برسد. پنجره نیمه باز بود و خطی از روشنایی را به میان و اتاق میدواند در آن سوی پنجره کوزیما دیده میشد که بی حرکت روی شاخه نشسته بود. خم شدم و دست مادر را بوسیدم. مرا در جا شناخت و دستش را روی سرم گذاشت. آه تویی بیا جو برگشتی؟ آهسته و بریده باری در میزد. زیرا آسم به سینش فشار میآورد ولی عقل و بهجا بود. تنها از یک چیز شگفت زده شدم. هنگام سخن گفتن کزیمو را هم درست مانند من مخاطب داشت. انگار که نیز کنار بالینش نشسته بود و برادرم از بالای درخت به او پاسخ میدم. خیلی وقت است که دوایم را خورده کازیما. نه مادر. چند دقیقه بیشتر نیست. یک خورده صبر کنید. داروی زیاد خوب نیست. کمی بعد مادر گفت. کازیما یک پرتقال به من بده. یکی خوردم. شگفتی هم هنگامی بیشتر شد که کازیما چوبه بسیار بلندی را که چنگکی سر آن بود از پنجره به درون آورد. و با آن پرتغالی را از روی زمین برداشت و به دست مادر داد. متوجه شدم که مادرمان برای آنگونه کارهای کوچک دوست دارد از برادرم کمک بخواهد. کوزیما آن شال مرا بده؟ کوزیما چوبش را جلو می آورد. میان لباس هایی که روی نیمکت افتاده بود جستجو می کرد. شال را می و آن را به مادر میداد. بفرمایید مادر! متشکرم پسرم. چونان با او سخن می گفت که انگار همیشه در یک قدمیش بود. ولی متوجه شدم که هیچگاه چیزی را که او نتواند بدهد از او نمی خواهد. اگر چیزی از اینگو نمی میخواست رو به زنها یا به من می کرد. شبها مادر خوابش نمی برد. خوزی همان شاخه می ماند و چراغ کوچکی را کنار خود روشن می کرد تا مادر بتواند تواند او را ببیند. بیماری آست صبحها بیشتر از هر زمان دیگری او را آزار میداد تنها کاری که می برایش کرد این بود که سرگرمش کنی. کوزیما برایش نیلبک ن میزد یا صدای پرندگان را در میآد یا پروانه ای را میگرفت و به درون اتاق میانداخت تا آنجا بپرد یا رشتهی از گل گلیسین گلی می بافت و به او میداد در یک روز خوش آفتابی کوزیما مکسه کوچکی به دست گرفته بود و حباب از کف صابون درست می گرد. آنها را به سوی بستر مادر میپند. مادرم سرگرم تماشای آنها بابها بود که اتاق را از رنگین کمان پر می کرد. چه کار دارید میکنید؟ این را با همان لحنی می گفت که در کودکیمان بهکار می برد و از ما خورده میگرفت که چرا بازی هایی میکردیم که به نظر او بیش از اندازه بچگانه و بیهوده بود؟ با این همه چونین مینه بود که شاید برای نخستین بار از بازی ما خوشش آمده است. بابا صابون تا نزدیک چهرهش می رسید. آنها را فوت می کرد و می ترگاند و لبخند می زد. به میان دولبش نشست و همانجم ماند. نه ترگید. زنها و من روی بستر خم شدیم. کاسه از دست کسیم افتاد. مادر مرده بود. دیر یا زود جشن و شاد منی باید جایگزین گذین سوگواری می شد. قانون زندگی همین است یک سال پس از مرگ مادرم با دختری از بزرگزادگان منطقه نامزد شدم به دشواری توانستیم به نام زدم به پذیرانیم که در امبروسا زندگی کند از برادرم میترسید از این فکر که مردی هست که در میان شاخ و برگ ها میپلکد از هر پنجره به درون سرک میکشد و هر لحظه ممکن است قافلگیرانه سر راه آدم سبز شود وحشت داشت به ویژه اینکه هیچگاه کازیما را ندیده و او را آدمی وحشی مجسم کرد. برای اینکه این فکر را از سرش بیرون کنم، میهمانی ناهاری در یک بیشه برپا کردم و از بارون نیز خواستم که بیاید. بشخاب او را روی میز کوچکی گذاشتیم که بالای شاخه درخت آلشی جا داده بودیم و باید بگویم با آنکه به آنگونه گونه های رسمی عادت نداشت، بسیار برازنده رفتار کرد. نام زدم که دید او آدمی درست همانند دیگران است. و تنها تفاوتش این است که بالای درختان زندگی می کند تا اندازه ای آسوده شد. با این همه همچنان به او بی اعتماد بود و نمی توانست این حس را کنار بگذارد. پس از عروسی در ویلای مانجا گرفتیم، اما همسرم می تا آنجا که میتواند از گفتگو با برادرم و حتی از دیدن او پرهیز کند. گرچه کازیموی بینوا پیاپی برای او دست گل و پوستین های با ارزش می آورد. بچه دار شدیم و کودکانمان رفته رفته بزرگ شدند. اما همسرم همچنان بران بود که نزدیکی آنان با چنان اموی می میتواند بر تربیتشان اثر بد بگذارد. تنها زمانی خیالش راحت شد که قلعه قدیمی رندو را که از مدتها پیش متروک مانده بود باسازی کردیم و در آن نشستیم و هرچه کمتر در امبرازان میماندیم و بیشتر به رندو میرفتیم تا بچه ها از کزیمو دور باشند. از سوی دیگر کوزیمونیز در میافت که زمان میگذرد یکی از نشانه های گازر زمان اپتیموس ماکسیموس بود که پیر میشد. دیگر برای شکار روبا با دست سکهای شکاری همراهی نمیکرد. دیگر در پی آن نبود که با سکهای نجاده و گرگی عشق بازی کند. همواره در حال چرت زدن بود و از آنجا که شکمش چندان فاصلهای با زمین نداشت. در همان هار که روی پاهای کوتاهش ایستاده بود می توانست بی هیچ دشواری بخابد. پای درختی که کزیما بالای آن نشسته بود دراز می کشید و گهگان نگاه ای به سوی او میانداخت و دم خود را تکان میداد دد. کزیما بود. می دید که زمان به شتاب می و از اندیگهش توهی است. از بالا و پایین رفتن و پلکیدن میان شاخه خسته شده بود. دیگر هیچ چیز نمیکرد نه شکار، نه عشقهای گذرا و نه کتاب. حتی دیگر نمی دلش به راستی چه می خواهد. گهگاه دچار خشم می شد و با شتاب بسیار از نرمترین و نازکترین شاخه های درختان بالا می رفت. امیدوار بود که درختان دیگری در آن بالا بیابد و تا بی نهایت پیش برود. روزی از روزها، اپتیموس ماکسیموس آشفته به نظر می رسید. انگار چیزی در هوا بود که ناآرامش میکرد. کرد را رو به هوا می گرفت بوم می کشید و دوباره روی زمین می خوابید. دو سه بار بلند شد تکانی به خود داد و باز دراز کشید ناگهان بلند شد و به راه افتاد نرم نرمک میدوید و گهگاه می ایستاد تا نفسی تازه کند کزیما از بالای شاخه ها دنبالش می کرد اپتیموس ماکسیموس پا به راه میان جنگل گذاشت. چون این مینمود که به سوی هدفی مشخص میرود گهگاه گاه می ایستاد تا خستگی در کند شاشکی میکرد نگاهی به کازیمو می و دوباره تکانی به خود میداد و به راه میافتاد به جاهایی رسید که برادرم چندان با آنجا نمیرفت و حتی برایش ناشناس بود و بدین گونه به شکارگاه اختصاصی دوک بتلمیوس رسیدند این دوک پیرمرد ناتوانی بود که بدون شک از سالها پیش دست به تفنگ نمیبرد. اما چندین نفر را به پاسداری از شکارگاه خود گماشته بود و هیچکس کس جرأت نداشت در آنجا به شکار بپردازد کوزیما که در گذشته سر کارش به آن نگهبانان افتاده بود می‌کوشید هیچگاه به آنجا نزدیک نشود ولی روشن بود که اپتیموس ماکسیموس برای یافتن شکار به آنجا نمی‌رود چون این مینهود که نیروی اسرارآمیزی او را به آنجا میکشد. و بارون بسیار کنشکاف بود تا انگیزه او را بداند. راستی او را به کجا می کشید؟ سگ رفت و رفت تا به چمنزاری در دل جنگل رسید. در کنار چمنزار دو شیر سنگی دیده می که روی پایه استوار بودند. شاید زمین های خانواده از آنجا آخاز می شد. اما جز آن دو دوپیکری سنگی چیزی دیده نمیشد. و در دور دست های چمنزار بسیار پهناور تنها سایه‌ی سیاه انبوهی از بلوط به چشم آمد. در پس آن درختان آسمان پوشیده از ابرهای سبک و نرم بود. هیچ آوایی از پرندهای به گوش نمی رسید. چمنزار حالتی داشت که کازیمو را می‌ترساند. از آنجا که همواره در میان شاخ و برک انبوه درختان زیسته بود، و این دلخوشی را داشت که از بالای شاخه ها به هر کجا که درش بخواهد میتواند برود، از دیدن آن پهنه بیکران و برهنه که برای او گذرناپذیر بود، دچار نوعی سرگیجه میشد. شد. اپتیموس ماکسیموس که انگار دوباره جوان شده بود، با همه نیروی خود در میان چمنزار به دویدن پرداخت. کزیموسو سوتی زد تا او را برگرداند. کجا <اعدت> می اپتیموس ماکسیموس؟ برگرد! اما سگ گوشش بدهکار نبود حتی سر خود را نیز برنگرداند همچنان میدوید و میدوید. پس از چندی تنها ویرگولی در میان چمن دیده میشد که دمش بود سپس آن نیز ناپدید شد کوزیموس سرگشته بالای درخت ایستاده بود به گریزهای ناگهانی سگ عادت داشت اما آن بار چنان بود که آن چمن دست نیافتنی اپتیموس ماکسیموس را به کام کشیده است. ناپیدای او به نگرانی برادرم دامن میزد و او را دچار دلشوره می کرد. هر دم انتظار داشت که از آن سوی چمنزار چیزی سر برآورد در آن حالت بی آرامی صدای کسی را از پایین درخت شنید. شکاربانی بود که دستهایش را در جیب فرو کرده بود و سود زنان می رفت. زیمو پیش خود گفت که شکاربان خانواده بتمیوس نباید آنگونه ولنگا رو بیخیال باشد. اما نشان ای که روی بالاپوشش دوخته شده بود از آن خانواده دوک بود و کازیمو با دیدن او در روی شاخه راست کشید تا خود را پنهان کند. ولی دوباره به فکر سگش افتاد و ناگزیر شکاربان را صدا کرد. هی سرکار، یک سگ پاکووتتا این طرفا ندیدی؟ شکاربان سر خود را بلند کرد گفت؟ آ شمایید؟ شکارچی پرنده و سگ خزنده؟ <تصفيق> نه، سگ شما رو ندیدم. امروز شکار به درد بخوری گیرتان آمده یا نه؟ کوزیمو، با دیدن مرد شکاربان یکی از دشمنان سرسخت خود را شناخت. گفت شکار نمی کنم. سگم در رفت و مجبور شدم دنبالش کنم. توفنگم پر نیست. شکاربان به خنده افتاد. <تصفيق> حالا دیگر هر چقدر دلتان بخواهد میتوانید شکار کنید به ما چه؟ چطور به شما چه؟ حالا که دوک مرده کسی کاری به این کارها ندارد دوک مرده؟ نمیدانستم سه ماه است که مرده وانگهی الان بین بچه های دو زن اول و آخرین زنش دعوست کارشان به دادگاه کشیده مگر زن سومی هم داشت؟ یک سال پیش در سن هشتات سالگی زن ای گرفت. آن هم دختری که هنوز بیست و یک سالش تمام نشده بود. دیوانگی است دیگر. زنش حتی یک روز هم پیشش نماند. تازه الان گاهگاهی به املاکش سر میزند که البته گویا چندان هم از این زمین ها خوشش نمی آید. چطور خوشش نمی آید؟ میآید و توی یکی از کاک های قلعه ها می نشیند. همیشه هم یک گله آدم دنبالش هست بعد از دو سه روز که ماند از همه چیز بدش میآید و راهش را می گیرد و میرود. هر بار هم سر و کله ورسه پیدا می شود میآیند و سهم خودشان را می و او هم به آنها می گوید، جدی می گویید بفرمایید سهمتان را بردارید. الان آمده اینجا در ساختمان شکارگاه اما معلوم نیست چقدر بماند؟ شرط میبندم که یکی دو روز دیگر میرود این ساختمان کجاست؟ آنجا؟ آن طرف چمنزار پشت درخت های بلود سگ من هم همان طرف رفته حتما دنبال استقان رفته میبخشید اما فکر میکنم با شما که هست زیادی گرسنگی میکشد <تصفيق> این را گفت و قهقه قه زد و چیزی نگفت چمنزار دست نیافتنی را نگاه می کرد و منتظر بود که سگش برگردد. در سراسر آن روز از اپتیموس ماکسیموس خبری نشد. فردای آن روز کوزیمو دوباره خود را به بالای درخت دیروزی رساند و چشم چمنزار دوخت. انگار که دیگر هیچ چیز نمی توانست او را از دست دلشورهی که با تماشای چمنزار او چیره می شد رها کند. شامگاه بود که سگ برگشت. نخوست، نخطه کوچکی بر روی چمنزار دیده شد که تنها چشمان تیز کازیما می توانست آن را ببیند. نزدیک و نزدیک تر می آمد. مکسیموس، بیا، کجا بودی؟ سگ ایستاد، دومش را تکان داد. نگاهی به صاحب خود انداخت. پارسی کرد انگار که از کازیما میخواست به سوی او برود. سپس، نگاهی به آن پهنی سبز انداخت که کازی ما توانست آن را به پیمایت. چند گامی به دو دلی پیش آمد. آنگاه برگشت و دوباره دور شد. اپتیموس ماکسیموس! اپتیموس ماکسیموس! اما سگ به شتاب دور می شد و رفته رفته نابدید شد. اندکی پس از آن دو شکاربان سر رسیدند. هنوز منتظر سگتان هستی در باب. در ساختمان شکارگاه دیدمش جایش خیلی خوب است چطور؟ همین که عرض می کنم با دوشست بود و او هم مدام نازش می کرد و دست به سرش می کشید انگار که از مدت ها پیش می شه که قلب سگ نزدیک شکمش است سگ شما هم جای خوبی گیر آورد و همانجا می ماند <تصفيق> دو شکاربان دور شدن اپتیموس MAXIMUS دیگر پیدایش نشد. کوزیمو هر روز خود را به همان درخت می و به چمنزار چشم می دوخت. انگار می خواست خطری را براورد کند که از چندی پیش او را تهدید می کرد. خطر دوری، خطر فضایی دست نیافتنی و انتظاری به درازای زندگی و شاید فراتر از آن.